یک سرگرد ارتشی که بعد ما فهمیدیم که ایشون اهل آشخانه است سرگرد رستمی این به میل خود به صورت بسیجی آمده بود در مجموعه گروه شهید چمران اونجا فعالیت میکردنده من دیدم او رو مکررند می آمد می رفت. بارها دیده بودم شهید رستمی رو نشسته بودیم این با مرحوم چمران شری راجع به همین مسائل روز مسائل جبهه و مسائل کارهایی که فردا داشتیم داشتیم صحبت می کردیم در باز شد همین شهید رستمی وارد شد چند روزی بود من او رو ندیده بودم دیدم سرتاپاش گلالوده این پوتین ها گلالود بدنش آلود، صورتش خسته ریشش بلند اما چهره رو که نگاه کردم دیدم مثل ماه، این چهره می درخشه رونی بود رونی بود من چنین چهره های نورانی و بشاش شما و چنین گریه های شوق شما حسرت می روزهای قبل من ندیده بودم در این حالت رو رفته بود در یه منطقه عملیاتی اونجا فعالیت زیادی کرده بود حالا آمده بود میخواست گزارش بده بعد از چندی هم به شهادت رسید این حضور فداکارانه ارتشی بود اما آمده بود بسیجی وارد میدان شده بود فعالیت میکرد مجاهدت میکرد تو همون مجموعه بسیجی شهید چمران این نورانیت رو خیلی ها دیدن ما هم دیدیم دیگران هم بیشتر از ما دیدن این ناشی از همون حضور فوق العاده است اونا شما هم که هایی مثل چمران بمیرید مثل این سرباز هایی در مرز ها کشن می شوند بمیرید اون روزی که همین هدای عزیز ما در جبه به شهادت رسیدن همه که نرفتن جبهه ادهی هم بودن مشغول کاسیبی شد ادهی هم مشغول پول در بردن شد اده هم مشغول سو استفاده شد اده هم مشغول خیانت شدن این شهدا بدون اینکه که کنند به آنها رفتند و نتیجه این شد که توانستند نظام اسلامی را حفظ کنند و امروز هر کدام یک ستاره هند, یک خرشید کنون که آمدیم تا مرا بشو با شراب مولجام مرا دیگر رها مکن مرا از این شتا ها جدا نکن هر کدام یک ستاره هم، یک خورشید مرا از این ستاره ها جدا I call